همی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت به قصد جان من زار ناتوان انداخت نبود نقش دعوالم که رنگ الفت بود زمان طرح محبت نه این زمانانداخت به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد به چشم تو صد فتنه در جهان انداخ شراب خورده و خی کرده می به چمن که آب روی تو آتش در ارغبان انداخ به بعض مگاه چمن دوش مست بگذشتم چو از دهان تو هم گنچه در گمان انداخ به نفش طره مفتول خود گره می زد. سبا حکایت زلف تو در می آننداخ ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم سمن به دست سبا خاک در دهاننداخ من از ورع می و مترب ندیدم از این پیش هوای مقبچگانم در این و آننداخ کنون به آب می لع خرقه می شویم نصیبه ازل از خود نمی تواننداخت مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مقام ننداخت جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خاجه جهان ننداخت